بشنا تو آهم آه خدا چی بود گناهم ای خدا آه ای خدا بشنا این صدا می پلاهم خدا بیر از شبای سردمن عشقی ای نشاد هم دردمن اینجا خدا دم یرین بار تو دستسمما بگیر می میره غم بر گوشگیر بازم تو دستسمما غم شده در یای خود تسلی خدا چنون این صدا یوفیشم به مو sak <muchas>